که لازمم از اینو خیلی were... من بیزورد ترسم این ما کلیات شومشه را پذیر تبنی باشیم سنتی در تقلیدی درست قبول بکنیم باز نیستا باز حالا که صحبت می‌بینیم چیه اوض بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و الله علی و رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم واجبه که بعد کارشی محمد ابن امران چون یاد این توائدی هست در کارهای رجالی و کارهای قیه و کارهای حدیثی بسرکنی و اینشالا نافعه مقداری بسیم و از جای توسعی در بحث از بشید شد که چون ما سه محور داریم محور روایات که توضیح شده دو محور رجال که در این محور ما با اهل سنت شریکیم همه محور که رجال اساسا از روایات گرفته شده فقط وقتی که یک نفر رجالی نبرد باز دیگه ممکن از همه رجالی هم بگیره یعنی اساسش از روایات بود اما اینطور هم نمود که همش روایت باشه فرصوی مثلا میگن شعبه اولی کسید که این بحث های حدیثی و رجالی رو مثلا خب طبیعتا شعبه نصف به معاصرین شلام و شهادت که همین از تاظوران خیلی دقی به ابوالون علی احیاش و ابوالون فیروز که پیش ما معلوبه خیلی به او حمله میکنه خیلی به او بد میشه چون مثلا ابوالون جنبه روح دو و تقوا و و و از ما عارفان زندگی ظاهردانه ای داشته شو خیلی با او بد میده خیلی تند حساب با او خیلی تند خب لازم نیست هر کلامی که یه گریجاری گفت حتما از روایات باشه مراد ما اینه که در اون قسمت اساسی اینه بله خیلی از جایی از معاصر خودشون از احمد ابن هنبر در معاصر سالگه از ابن نبی حاتن یا از شیخ توسی در اون اما اونی که الان ما بیشتر جاییم فرسیم مثلا راجع به اصحاب امام ساده این موظمش از اگر همش نگیم از روالانی اون وقت حسن اولین کسی که این صورت رو جمع کرده در کتاب ابن عقده بوده. در رجالی که موضوع عوضه نوشته البته خود علمائشی هم از اول قبول داشتیم که حسن این چار وزار راوی باشن خود ابن نوح که استاد نجاشی یه مستدرکی برای ابن عوضه داشتیم یعنی کسانی که رواهن ساده و ایشون ذهب نکرد اضافات کرده حفظ دیگر که از کردم هنوزم الى زمان ما این مطلب ادامه داره. و شاید خیلی از کتاب های خطی اطلاع پیدا باشه ما روبات جدید پیدا بکنیم این وقت امثال محروم شیخ توسی مطالب رجالیش رو از دو مستر گرسه که کتب رجالی قبل از ایشون مثل اجال مرگویل دیگران نجاشی کشی کشی هم خیلی نظر دارد مرموشه مطالب کشی رو خیلی نظر داره. و بعض از که ایشون از کشی هم کرده حالا تصریح هم به اسم کشی نکرده ظ قلب خلوتای کشیه جوزه اقلات کشیه که متاسفانه شیخ تو اون اقلات واقعی یک حالا توی این بحث نیست یه مقداری رو هم شیخ استخراج شده یعنی در یه رواید دو کلان فلان کلان برگزه کتابش نیست مثلا به با مثال بامبسان مخاب بگم خدمتون میگم کتاب شیخم من شنیدم رویت خودم اون نصر نیدم کتاب شیخم رجال ایشان تمام نشده بود یعنی مصرده بوده اینو نسخه اضافه کنه تا این که ایشون به این سفر به نجحت میشن بخاطر اون اون فتنه‌ها و آشوبایی که در بغداد چند سال قبل از ایشون بود، بعد بغداد اضافه داشت ایشان منجره به سفر به نجحت میشن لذا این کتاب ایشان مبیزه نشده این ترشینی در من گفتم نسخه خطی من که نشون می من رو نه نمی کنه که کتاب مبیزه نشد در زمان خودش به تعبیر نرسیده ولی هم ابحام داره هم غلط داره هم تکرار داره یه مشکلاتی داره کتاب خیلی حالت کتابی به خودش مثل یادداشت هاستیش در جنبه یادداشت. کنار گذاشته و تو خود ما خیلی مثلا به ها یکی هاشیه یار جلال خوبی یار جلال صحیح نمیزی این یادداشت بوده که بعد اینها به مبیعزه در میگن در همین اصحابه ما مساده و حرف تقریبا اولش منظم میکنم خب در تفرار رو نیمو خواستن جواد بده مثلا محمد ابن ادریس بعد از محمد چون در کتاب احر سنت که قبل شیخ همین این رو مراعات کردن مثلا کسانی که هرفت ش... پدرشون با همزه است بس مثلا کسانی که هرفت با بابه محمد ابن بشیر است بعد کسانی که هر پدرشون باهی، محمد ابن حسن آمن حارس محمد ابن حسن سنا باسفینه مرهوم شیخ در این رجال این را تقریباً مرتب ابرد رجال امام صادرش نگاه بی副نید تقریبا مرتب مثلا محمد ابن ادیسورد محمد بن بشه بشیر برد همین حقوق مرتب توی محمد ابن همران توی حکر اسیده محمد ابن همران نه چیز دیگر ننوشته بعد رفته بقیه محمد هارو تمام کرده بعد از محمد پسرون مثلا مسلم بعد از محمد پسرون مسلم فرسون فرسون منصور. بعد از مرسلم پسرون مسلم پسرون مسلم همین ش یعنی مینش یعنی ظلم و در بحث مین مرتبه وقتی اون موسا و اینها که تموم میشه بعدیه یه یه اون تقدیب و روف علفبایی خدر و بعد خود راوی که تموم میشه یه دفعه آدم هست میکنه چیشه هست نامنظمه دیگه اون نظم سابقه نداره احتمالا نه الهاقای بعدیه یعنی این کردیم ای اضافه کردیم این الهاقای بعدی دیگه نامرتبه شاید حدود مثلا 400 تا اسم 700 اسم اونا مرکب هنچی 400 تا 500 اسم کمتر بودن نشون بودن شما رفت یه دفعه مثلا یه دو تفعه با آخره اسم اصحاب ساده در میمونده نامرتب میشه توی این بخشی که نامرتبه محمد بن همران مولا بنیخه لیس ابن اریعی اینجا آخره شما آخره محمد ابن همران نهبی تو این بخشی این براتون روشن بشه که hey, این شیخ تکرار کرده سر روشن شد به نظرم یه شیخ اولش کتاب از یک کتاب اولشه اما کتوبه عالیه نبوده که هر چه طوره اولو جرأت دادی لطفا که اصلا توی هی موقایات نیست حسن بر برخوزی مقدران کنه اصلا برخوزی آن ریپوی سر میاد خمراه هی رو میاد مهم هی بودن این حال در کتاب شیخ کاملا واضحه در حرف در یعنی در اصحاب ممصاد مذبود خواهی کاملا این حالت محسوسه اون آخرش که میرسه دو سفه از سفه از میشه که ما الان حس میکنیم یا یک مصدر رو بعد دیگه یا از کتاب رو استخراج استخدار شدیم پس سه بار ایشان اسم بود یکی اونجایی که منظم هست یه بار محمد بن حمران نهیم دوباره بار هم که نامون از درمه من اینا رو توضیح میدم برای این که نتیجهی که میخواب از ارزم که خواهز رجالی لطیفی داره ارزو خب حالا اگر این مولا بلی فهم بگی ایشون از رجال برقی گرفته، چون این مثلا برینی تو رجال برقی هست محمد ابن محمد مولا بلی نهده این فهم رو نهده هم خیلی قریب هم اشتباه کرده ایتا. اما لیت ابن عیم تو ر لیس ادنایا توی <تصفيق> جار برقی نیست توی محمد بن عمران نحوی بن جوفی اون بغذاس اون چیزی نداره این دو تا اسمی رو که در بخش مشرح ما مشوش نام برده خوب دقت در کتاب ابن داوود اون زید و توی محمد بن عمران نحوی آورده در از شیخ حضرت مردم ابن داوود رو اگه گفتن کردن، اگه صحبت کردن که رضائشی ضعيفه. خب بحثم رو دارم که خیلی زحد. رضائش اینطوره. عالم هایی که مثلا میگه کش در کشی موجود نیست، اون نجاشیه. عالم جش که نجاشیه، در نجاشی موجود نیست، کشی این جش و کش که خیلی جا و جا بده. این که خیلی فضاوتوری، یه چیزی خیلی گفتن خود بوده یا نخوندن. حالا بذارن این مال خطریشام بود این کجاست این که خیلی فضا از باری این رسمان که خیلی لیلا هر هفته چند باری خدا رحم کنه معدرس اردنوی که شاپیر بود که این میشه کج مراد وی جش جش نمیشه مراد وی کج این که زیاده این که در کتاب خیلی زیاده این مشکل کتاب می اینه که خیلی زیاده یه فواید خوبی هم داره اما منهج العلماء این کتاب غلط دور زیاد حالا سائر کردن دفاع‌های از کتاب بشه اما انصافش این نیست انصافش این. حالا من وارد جلل داوود که چون بحث خاص خودش رو خاص مرحوم آقای کسطری در مقدمه رجال خودشون قاموسی از این ذراورد یه تونظیری راجع به جلل داوود دادن بعد اینطور مراجعه اما کار میخواد اون حدی نیست که و عده‌ای هم مثلا حتی مرحوم آقای همینی به مناسبت شوش و الغدیر که تو الغدیر چون خوبی هم هست اگه در داره ایشان سعی که یک نهی دفاع از ب... به مناسبت اسم شهر قدیرش رو برده یه دفاعی از بحثه رجایی ایشان بکنه به هر حال داره یعنی رجال بن جاوید یه مشکلاتی داره اما خب مزیت مهم رجال بن جاوید نسخه رجال خطشه شیعه ایشان بوده حالا اونم یک مزیت هست اما مشکل طولی کرده مثلا هم اینجا مشکل تولید کرده که این لیزر نعین شیخ کجا آورده تو نسخه مکتوب ما مولا بنی فهر اونجا آورده تونسخه ابن تاو داوود عورده انو نهدی ابن حیل. وقت این چرا مشکل درست کرده چون اون مولا بنی فهر باشه بنی نهد باشه این مشکل نداره داره فرصم. مولا بنی چون محمد ابن همران نهدی با این عنوان در فهرست نجاشی آمده. مشکل منو چی با اون عنوان اولی که نجاشی نیامده با این عنوان دومی محمد بن همران نهلی توی فهرست نجاشی آمده مثل نتیجه چی؟ بعد از نجاز بعد از ابن این شد که این محمد بن همران نهلی لیس ابن حیر نزا نتیجه چی شد؟ اونی که باید کتاب نجاشی هست؟ نقه اعیم نیست محمد ابن همران اعیم از خاندان زراره نیست این منشه روشن چه این منشه به کجا ردید. حالا ما ما چیکار کنم عقل نظری عقل نظری برای شما شهر واقع چیه خب اقل احالی چهار با به موازم خب ما نمی واقعش من همیشه ارز کردم لازم نیست که همیشه چیز نظر بگیم واقعا نمیدیم واقعا تو نسخه افریشه کجا بوده این نسخه ما که اینطوره این در زیل ابن عین در زیل مولابنی فهره فهره الان نه و در نسخه ابن داود در زیل نحنی شاید ابن داود هر یکی فرض کرده یا شد تو نصحه ایشان نبوده اصلا واقعا نبود, نبود تو نصحه ایشان نصحه متعارف و جاده از خواست, خواست, خواست, خواست خواستی نداری حالا یه نسخه از مقوم آیه تواتبای خدا رحمد مستد ع که این کیتزات بینا این اون نسخه اگر هست نسخه چاپ شده. اون نسخه من ندارم نسخه که ندارم رجاله برامش نسخه بازاریه خیلی نسخه عادی این نسخه رو مرحوم حاج توانای قدس الله نمسان و چاپ کردن خیلی مقارنه کردن نشون نسخه نگفتن که اونجا چیکار کرده این نسخه چیه حاله این یک قسمت بحث این قسمت بحث لطیفه قسمت دوم که اون خیلی. زمین زمینتاده در مباحث علمی ها حدیث ساز آیا ما کلام شیخ رو تعبدی قبول بکنیم؟ حالا اون نمی بشه یا مولا من لا اقول تصدمت تو نسخه ما تو و چی روشن بکنیم تو شیخ ما توی نظری دلو تو نسخه نه تو نسخه پیشونش ناه بودی منم چی؟ ماو شه. کارو شه چند بود؟ کیون وقتی نمی میون. گندم نگفته. اصلا شیخ تو آورده میدونم که این نسخه لجال ما شماید این شیخ این نسخه موجودی پیش ما بازاری ما نسخه به شیخ چیز رو بیدیم مرغوم روشن شد مرغوم این ها اصلا بنی نهد و بنی سهر اصلا نهارده اصلا مرغوم ابن دارود به نقل از شیخ فقط نهدی آورده یعنی اون یکی دیگر اصلا نهارده کلن نهارده اون زیدی یعنی هم دیدر اون اسم هست تو زید نهدی ولا چاشم ولا کلام موجوده یه لحظه شما یه مصادر رو می‌گی درباره مولاه، اصلا نمی‌شه شکش برقرار کرد. این یه بحث، یه بحثی که به درحاله شیخ خرمزی نیست ابن اعيان. اون بحثی که خیلی مهمه و در رجال خیلی ارزش داره اینجاست. که آیا این حرف رو شیخ تعبد از شیخ تعبدن قبول بکنه؟ خوب دقت کنید. یا یعنی این هر جنو اشتهاد شیخه مثل این مطلب دیده اونجا محمد نهمرانه نعیمی هست بلی شیبانه خب خامدان زراره معلوم بلی شیبانه این محمد نهمران نه خب نهرگه هست بلی شیبانه فس این اون نیست این اون نیست استظهار شیخه این مشکل کاری اینجاست خب این نعلم این نمو تلقه اما تمام صحبت این بحث لطیفی هم همدار و هم داره و, و یکی از مبانی کار در هم رجال و هم فهرست ماوال داریم یه بحث خیلی قابل اعتمادیه یعنی و البته یه صحبتش خیلی... یک شوراش که خب خیلی مثلا باطل میگه من یک شورا رو میشه که خیلی مثلا راجع به اصحاب یعقوب ما چیزی نداریم که این توبه معروف عمر حوادث و وقایع نه. شبهه است برادر کلینی باشه چون اسمش محمد معروفه هیچ نکته‌ای نیست ما کلا در مجموعه رواات ما در کتب اربعه اصحاب معقول نداریم در غیر کتب اربعه این توبه دیوادی هم در ترجمه امام هادی و امام اصخری توی باهر آمده از اصحاب اگر اگه دو تا یکی باشن اصلا این تعبیر اصحاب معقول نداریم روشن شد؟ ندارید درد زبان میزان ابن حجر سنی اصحاب یعقوب داره ایشون نقل میکنه از ابن عبی طیب ابن عبی طیب یحیی یعنی بن عبی فی اسوaghe ان شاء که دروشم از علمای شیعه است که به اصطلاح اهل سوییه بوده اهل حلب بوده ما ایشون اصلا نمیشوفتیم کتابی در جریان شیعه باشه کتابیشم نمیشوفتیم اصلا ما این شخص رو از کتابش هیچ خبر نداریم اما زبیر روزه کار این چه این شخصی بوده و کتابی داشته در نوشته های ما کلن نیامده اما ابن حجر در لسان ازش نه هم می خیلی جانوی یا قال ابن حبیطهی تاریخی نه هم می کنه از ایشان مطالب رجالی شدیعه رو این یعنی راه ما به ابن حبیطهی به خودش رو به کتابش ابن حجر در کتاب لسان لسانویز این هم یکی از, از بزبطهی محسیباقی این, این خدا رحمه شده که موضوعی ازش اولیه نفری دیگه ایشان نیسته هم که علی ابن حکم انباری یا علی ابن حکم قال علی ابن حکم اونه که اصلا کلن اسمش نداری اسم کتابشان نداری ما زیر از لسان و میزان هیچ راهی بونی چرس نداری از علمای شیعه که ما هیچ راهی به معرفت ایشان نداریم جز کتاب لسان و میزان در لسان و میزان نرکد از نبیته که اصحاق ابن عبوب روا توقیه امام المهدی علیه السلام و شاید مثلا روا هنال کلهی خب بعد از این آنه ما آسره ما بخصیم بعد اصحاق ابن عبوب در روایات ما محمل و بعد چون ویدیو افتاد میگن محمل بعد در میگن مجهول سن محل کلام که محمل تحقیق و مجهول چیه بعض در این مجهول استداختی من باید استداختیم مجهول و محمل نمو خود بشن یا محمل یا به هر حال مرال اینه اسحاق بن در كتب رجالی ما حتی در رجال شیخ اسمش نیامده. اینکه حالش نبود. دو تا روایتی که ثقی بن که خیلی محل کلامه، یکی رو در دو روایت اسم اسحاق بن داریم که تبرکانی. دیگه بیش از این معلومات نداریم. مال شیعه. از سنی‌ها معلومه نه این در کتاب میزان اومده. این معنی شخصیت خیلی در دسانی. خب بحث اینه که ببینید شما می از کتاب لسان و این شخص رو نطور این شخصیت دارد. تقریبونین لسان و چه کار کرده رفته به ابن عبیتهی؟ ابن عبیتهی چه کار کرده؟ افید یک توقیه از, از امام مردی که اصحابه میره هم نهار کرده. خب از داره این مسئله که ما بجلانه میدونیم چرا تحبود بخونه مقبول کنیم؟ این چه جده تحبودیه؟ این مثلاق بارز احل افتقه هاست. خب این که ما بلشه بل بهسان در روایت شیخ توصی در تمام دین مرحوم طبوک ما دارید این حدیث رو می‌بینی اسحاق بن یعقوب قال کتب تو به تراسدیه علی محمد بن عثمان یا حسین روحه و این اصلی جواب جواهر این بوده امر حواله واقعه ببین بعضی از ذهنیتشون اینه معنی می‌شین شخصیت چون در نشان میزان آمده تمام اطلاعاتی که در نشان و میزان به هیچ ارزش علمی نداره چرا چون وجدانیه خالص نکته خاصی توش نداره. برگردنده به نبی تشکرشو نمی‌کنسه. از جنس اون کتابش نشون میده. و از اینان معاصر ما جمع کردم مجموعه منغولات ابن ریکی رو در میزان چاپ کردن ما غیر از این گلم راهی ندید. راه ما منحصر به رسالمیزان است. وقتی گفتم رسالمیزان نلزی. اون شخص من حرفم اینه که این ارزش علمی نداره. دلیل مطلب رو که برای ما ثابت است دل وجدان نداره. این مثالش خود خیلی بارده که بحث این از که ما معتقد این که شاید جاهاییم هم همینطور باشه مثلا این با مثال تلحت ابن زید صاحب کتاب هم هست سنیه من ظاهرم معموم نجاشی چیز اسمشم اوزه کتابشم بحث کرده توصیق نکرده نجاشی. تلحت ابن زید نگاه پرم توصیق نکرده معموم شیخ فرم نه تلحت ابن عامی و الا انه کتابهو معتم هم مرغ موسی سا... قال غیر از خامنوی زیاراتمون میوشه تا تفسیر بشه وقتی که خیلی دنبال خامنویات بودن مرغ موسی فهمید چون سقر چون کتابه و معتمدان لازمه رساقتیشه چرا اعتماد بر کتابش میجون سر هست یعنی به عبارت اخرى عبارت شیخ رو یک نوع تعبد گرفتن اون دقیقاً این مثال رو من میذارم که خوشا بشه براتون که خب مرغ شیخ رضوان تا شهادت میره که کتابیشان قابل اعتماد من درس ها و تفسیرها محل خدا غیر از این که تلاوزان بینه اعتماد بر کتاب با وساعت راوی اصلا هر چیه نه اون وقت ممکن ممکنه یک راوی یک کسی که حدیث نعم کنه نه فقط چه خیلی هم حدیث باشه مستشر به اما نقلش که از کتاب کافی کنه درست هم کنه هیچ رتبه وساقه و جلالت و کشایی و اینا رو نکنید کتاب کتاب نوعی مثل چند مثلا چند تا نسخه داشه این نسخه مثلا نسخه قابل اعتمادید غیر از این مقلب سوال اینه خوب دفعه کنید ما الان در کتب که تعداد قابل ملاحظه از روایات ترحط ابن زید داریم در کتب اربعه نمیخواد قیل از ترحط ابن زید که شواهد هم نشون میده از کتاب ایشانه آن من با شواهدش نمیشه سوال من اینه شیخ که میگه کتاب و معتمدون آیا نظرش این روایاته مثلا فقط چه مورد چه مورد علمای در کتب عربه از کتاب سلحه نهار این که میگه معتمدون یعنی حتاب مادر کتاب عربه ما در کتب ازش اعتماد اگر این باشه شیخ با ما که میکنه این تعبود نیست شیخ دیده در کسیده در رویت هموم چه ما شده دیده 500 کم بود که هموم نگاه میکنیم پونست طاره باید دیریست طاره باید ست طاره باید حالا ممکنه شیخ با سی طاره باید میگه این آقا مثلا محنوش احساب اعتماق ما با سی طاره کابی میبینیم باید دیریست طاره باید خوبیلی دکت بکنیدی چون کمتر زریفیه ت ما یک عبارت رو بر اساس تحبد معنا بکنیم یا اون عبارت رو بر اساس فهم یا به تعبیری استنباد استزها فهمیدن معنا بکنیم این دوتا خیلی فهم بکن نتیجه نتیجهش این کتابه و معتمدان رو دیگه مرادشه ای اینه که آکتا بروره نگاه بکنیم رواد ترجزه اید هست امرادشه هم بگشه خب ما میتونیم بکنیم دیگه کلام شیخ اون قلاعت رو در ما پیاده نمی کنه روشن شد مصدر ایشون روایات ماست ما هم نگاه میکنیم شواهدش هم می ممکن است ما نگاه بکنیم ببینیم اصحاب ما که بعدین روایات خصوص خاصه در کتاب احمد اشعری امرو اینشون انتقاد کرده کرد. پس تمام کتاب معتمد نیست یه از کتاب موردن دلیل گیری ها اما ف... اگر احتمال بدیم که شش یک مطلبی رو گفته حالا این مطلب را از کجا گرفته از کتود رجالی گرفته از اصحابیانتون بحثی دیگه نیست که اصحاب ما گفتن ما بر کتابش اعتماد داریم نظرش به روایات نیست حالا یه یک مصدر رجالی بود الان به دست ما نرسیده یا از مشایخش شنیده مشایخ از مشایخش شنیده اگر این دست ما میشه تحب برم باشه اگر این قسمت شد که شیخ به مطلعه برسیده که ما نرسیدیم این چه تبدو پس قبول کلام شیخ مقتریف در این نقطه که ابتداعا این بحثم توی لیث ابن عیم بیاری این لیث ابن عیم رو استظهار خود شیخ اون بس ما میشه یا این لیث ابن عیم هر جو گفته در زیر اون اسم گفته در زیر اون اسم در زیل هر اسمی گفتون چون عرف کردید شیخ مصدر رجالش دو چیده یکی کتب رجالیست خیلی تا خودش یکی کتب رجالیست یکی استخراجات کرده مثلا روایت دیده استخراج کرده اخصاص تو شیخ هم ده محاجم آقا یکی استخراج کرد افراد اسم که در کتب سابقی نیمون واسه یکی مثلا غیر کتو بردرن استقرارتونه اصمار زیر کنید در تقرید رو سابقی نمید شیخه بپرد کرده کار خواستی نفر حالا این در زیر هر اسمی که باشه این لیسه ابنهاییم رو خوب من اموز دارتون تحلیل کردن که این به طور کدی قاعده کدی باشی در مبانست رجالی آیا این استظهار شیخه خیلی است که چون این نربی اون شیبانی پس اون نیست ما میکن آو آو این مسئله آقا خویی هم فهمیدن اخصاص به شیخ هم داره آقا خویی فهمیدن اون آقا از خاندان زرار شیبانی از این آقا نهدی خیلی شیبانی خب شیخ هم هم می فهمیده این مشکل هم داره که اگر استظهار شیخ و شیخ خیلی برای ما ارضوش علمی نداره اما مشکل کجاست که این استظهار نباشه شیخ اعتماد یک محضر کرده که اون محضر را داره برای ما نیست. مثلا حالا اطوار شیخ یک یک کتاب رجالی در اختیار بوده که اون نوشته الان کتاب رجالی اختیار شیخ هم بوده اختیار ما رجالی برقیست اونجا اینطور داره محمد بن همران مولا بنی نهد دیگه نداره ایشان این اینطوش نیست خیلی عباراتش به شیخ نزدیکه ظاهرا شیخ هم از بنی برقی گرفته بوده اما طوری عبارات برقی لیثیع نیست این زینی این تقوییت میکنه که استظهار شیخ خوشه خب احتمال دیگه که در یک روایت بوده با حده محمد بن نه امران لیت ارنعی. احتمال داره خوبی در احتمال که هست. یا موربنی نه هست لیت ارنه هر اون روایت الان به ما نرسیده اگر بناس کلام شیخ رو قبول بکنید تعبدن قبول میکنی این تعبد مناش اینه. پس ما یک مطلب رو تعبدن قبول میکنیم از شیخ یا یک مطلب رو به صورت استظهار بکنیم که شیف استظهار کرده اونی که الان به ذهن من میاد با شواهد موجود ظاهرن استظهار شیخ را نه در مجموعه یه روایاتی که فعلا ما داریم چه این چیزی وجود داره لیت ابنهاییم و نه در کتاب رجالی و نه در کتاب فهرستی ما حتی نجاشی هم نداره محمد نهمران نحمران نهلی لیت ابن نجاشی هم نداره الان تقدیر سبوت این نسخه به احتمال بسیار بسیار خریفی شما این اضافه از شیفه به شواهد موجود ما و الان تقدیر اینکه بگیم شیف حالا یک نسخه جای رجاله اختیارش شده یا یک روایت رو دیده که این توش بوده اعتماد ما خیلی نمیتونیم بکنیم الان یعنی مطلب ایتوار در یک روایت بسیار شازی باشه یا یک مصدر دور افتادهی باشه با وجود نجاشی تسریحی به این مطلب نداره اعتماد بر این بسیار بسیار مشکله اعتماد معفول ما اینه ایشون در اول اصحاب و صادر محمد ابن همران ابن رو نام برده بعد توی این قسم اخیل که مشبهه محمد ابن همران مولا خیر، حالا به بن نه بنیفه. لیت ابن عیم ما اولی نیست اونی که ما میفهمیم اینه این کلمه لیت ابن عیم این استظهار شیخه و الان تبدیر تمزوی که نه آقاکی با بود ما یا قاعده رو به کلی ارز کردین کرارن و مرارن و تکدارن با اون رسیدیگی هایی که شده, شده، شیخه انصافا خیلی حب داره به گردن ساعتا به حب به گردن همه ما ایشون در تمام اون مجالاتی که الان مجموعه معارف دینی ماست تقریبا بلکه کاننی اقال تقریقا نوشار داره به آثار علمی داره تو رجال داره تو داره تو فقص داره تو فقص محصول داره تو فقص خلاف, خلاف داره تو کلام داره تو تفسیر داره تو حدیث داره یعنی خبا خب اونچی که محل احتیاج ما در مجموعه معارف دینی به استخدام مثلا فرسطه نظرم حالا پس این که به رواسته تب دارد اما انصافش مر... دعا داره مثال مرحجه در دعا داره و انصافا مقروم شهر قدس الله و سر شریف در مجموعه معارف دینی ما حضور فعال داره انصافش این چونه. و عرض شد که اگه خود و توفیل دارم به خودمان کارم چار بدیم در تقریبا در تمام این مجموعه هم داره اصلا در رجال یه مطلب داره کسی خیلی نگفته در فهره است ایک مطلب داره که نجسی نگفته انفراد به در حدیث انفراد انفراد دارن نیست که زیاده احاضی سرده که نه کلینی برده نه خدو برده فتوابای فخیشم هم اینطور نمیدان این هست یعنی این که مرموم شیف در این مجموعه معارف انفراد هم داره من ما ساموشهی که خود ما به نتیجه است توی انفرازات شیخ او سولا تعمال میکنه چون شبهه بسیار قریب پیش ما هست که محوم شیخ با اون مسئله که حجت خبر نگاه کرده علاقه شیخ قاعدتا قاعدتا مطالبش در غیر از آده شخصی خودش سعی میکنه مافل مفضل رو نقد بکنه این که مطالب شیخ اشتراح کرده روشن هر ما که همه ما اشتراح داریم اما خلاف ظاهره ظاهره همون چیزیه. اما آیا اون مسادلی که ایشا دیده عرضش علمی دارن جلوزده نه اون محله کرامه البته این به این معنا نیست که نجاشی انفراد نداره نجاشیم انفراد داره لیکن در مثل فهرت که نجاشی نوشته چون مستر خودش نوشته راحت میتونیم فکر میکنی که آیا انفراد نجاشی قبول بکنیم یا نکنیم شیخ در فهرت چون مستر خودش نوشته نسبتا راحت فکر میکنی در بخش حدیث استثنا راحت. بخش حدیث هم مشکل خیلی نداره. مثلا شیخ از کتاب تعدد بن کتاب الرحمه سعد بن زیاد حدیث ها میکنه. این کتاب الرحمه 5 کتاب بوده. وضو بوده، تارل بوده، صلات بوده، صوم بوده، حج بوده زکات بوده. زیاد نه. هر ما حدیث دیدیم که اولش در کتاب بشه، قطعاً مرحوم کلینی ای نمیوردید. اگرم ورده باشه از دیگه از گاهی اوقات سروح نقل کرده به انداده شیخ و قالب این روایت هم شزوزه چازه رواست سعد رحمه الله حالا مثلا محمد علی المحبوب چون در تمام کتاب تحذیب این ابتدار به اسم محمد النهلی المحبوب داریم قطعا کلی هیچ کدوم از آن نقل مکردیم بیا از اول میدونیم ما البته بعد از احادیسیشیم به مسئله دیگه کرده اما از کتاب محمد علی مرموم مرموم کنیم در کل فقر حتی حدیث وارد هم استقای زهر کرده فقط در ایمان و کب یه دان حدیث واحد اوورده و استاد مباشر ایشان نیست استاد مرموم هست, هست. سعد استاد مباشر ایشان یرگی به بلا باسه. از سعد نقل نمیکنه میکنه بعض از نسخ و از مرحوم محمد نام ما میدونیم و این خیال نفرمایید کهالا مثلا یک مطلب سادهیه مثلا اینقدر تو این روایات سرد روایات صحیحه هست که شازده اصحاب عمل نکردن آقای خوبی بعدها عمل فرنده یک ای نوع باید اصحابای شاز منشه شخصی نام علی بن اسماعیل از اولاد میثم کمال هست میتنی متكلم مرد بزرگواری کتاب نکاح داره. از این زواجات علی بن اسماعیل میتنی که که برای شیخ نبود نکردن نکاه. مان در شیخ نه دوق نبود که نه اون کلی. کی که از زواجات مهمه در اینکه مثلا ازدواج با باشره از نکاه داره همینه در شیخ منفردن علی در از علی بن خیلی کی فرقش داره؟ تو جامره. اون آمین هم که پتوا دادن عمده استردادشون روایت علیه این اسماعیل میتنید که از منطره شیخ پس مرمومش من نمیخوام بگم انفراد یعنی رب اشتباه نشاهام جا مرموم شیخ انفراد بخیر ما یک و میشوال اگه خدا دران توکر روز میخواد یک سری نوشته باشی انفرادش در کلام و فرندی زوپر و رجال و فهرست و اینها فکر ما بینه 20-25 جل بشه خب این خیلی امتونه آفاغ تازه رو در میراث‌های های علمی ما باز می‌کنه. یعنی چون این منفرد ها یک جا جمع نشده و تأثیری که این منفرد ها که در رجال ما بود خب برای در تأثیر رجال ما همینه شیخ منفردن گفته این نهدی یا مولا بگه نهد نیست ابنه اگر تا الهی امناحالا حالا رو که حالا اگه ای گفتیم این استظهار شیخی خب آیو خویی استظهار کردن آیو خویی بگه استظهار خود این که نجاست باری نیزن تحبت باری نیزن علایه حالی این بحث دوم بحث ما بود که راجع به رجال بود در رجال ما از کردم اونی که الان در کتب رجالی ما آمده سه تا عنوان در رجال شیخه یک دو تا عنوانم در رجال مرمون برقیه این در کتاب جا توی کشیح هم کلن نیامده این محور دوم رو توضیح دادن اونی که اروز روش بیشتر بحث کردین تعبد یا عدم تعبد بین این عبارت شیخ نیست از باستاد بحثی هم دارن که اگر اصلا شک میکنید که استظهار شیخ خوش از شهادت است و این شهادت هم اصلا از معاصر بیشون یاده توضیح دارن که از اینچه توی که از بحث ها راجع به اون صحبت ه بخش سوم ما بخش فهارس در بخش فهارس هم اول متحرر دو تا عنوان داریم بیشتر نذارید هر هم یه عنوان مفهوم شیخ توسی داره محمد النهمران نعیت فقط اون یکی که در اسم اون در فهرستش هست ده منظور رجیستر محمد النهمران فقط اون یکی که به اسم چیز دیگه هم توضیح ندید برای نشه کوفی و ساکن جرگرای ها شده که بین تقریبا واسف و بین دجه است. بین تقریبا کوفه و بین بسره مجموعه روستایی هستن که اینا که ای نحروان هستنید که وقت این نحروان همینجا بود آلا این آیه سنگی بوده نمیدونم جرگر جر یا بردها هست کردن به این اسم وجود نداره. و حال این مقداری که مقروم نجاشی نمیشه و مصدر دو هم برای ما واضحه یعنی ابهام نداره اگر مسئله باشه ترجیه مستر شیخ فهرست ابن است. هست پس می فهرست ابن بوته امتیازش اینه که در قوم بوده خود ابن جزو علمای ادب بوده فقط توی این حدیث نجوشی اشکال باده که ایشون ظاهراً قائل به این نظریه هست یعنی بردانیشون تعلید ترکیب آسانید قائل بود دین و تدلید مثلا پس یک کتابی رو اصلا یه طریق صحیح برنبی عمر داشته مثلا به کتاب نوادر النبی عمر با مثال یک آقایی هم برایش کتابی از النبی عمر مثلا کتاب الجنه این طریق ضعیفه بعدشم اون طریق صحیح این کتاب میچسبه این الجنه رنداره بهن طریق صحیح به کار می بره چهند از واسه واسه اسمش نظرس تعویض یعنی سند رو جا بجا کردن این یه نوع نبایت نجاشتی میخواهم بخواهم می یک داره که بکرم این طور میکیشه متهمه به این تدلیسه یعنی ترکیب الاسانی در اجازات این اصطلاح ها من برکون توضیح بدم اصطلاح که در روایات بکار بازه میشه مثلا علی ابن روایان عبیر ابن نبی عمر مثلا, مثلا این اصناتش میگه اجازات در فهارس بکار بازه میشه اصل یه اگر صورت که انتر یعنی کتاب هلبی و ان فلان اون وقت بودن نقدجی رو به و اجازات جابجا کردن خب مشخص شد یعنی که اصل رو کردن یعنی فارسی مثلا آمدن کتاب الان هم هست همین عوید الله در کتاب ایزاه قاضی نعمان مصری کتابی به نام المسائل بشن صدور شده در نجاشی یا در فهرستشیخ اسم این کتاب نیمانده المسائل ما نزدیم دقیق بکنیم کتاب حلوی داری؟ المسائل برای حلوی نزدیم حالا یک کسی خدا خدایی نکرده بگه آمد نه این مسائل سبس من هم تریق دارم تریقش چیه؟ من یک تریقه آمد و کلینی دارم کلینی هم میگه علی ابن ابراهی من عبی هنه ابن عبی آمد همه همه هنه حلوی اون مسائلی که در کتاب ایدار خاضی نومان هست یعنی با این طریق از پلاوی نه این تدریز میوه یه شاخ دونگه یعنی اون چیزی که ایشان اصناب داشت در کتاب کافی بود برداشت رو تبدیل به اجازه کرد اصناب رو تبدیل به اجازه این باشد شد این تحلیل اصانی به اجازه و تدریز و ترکیب الاسانی اجازه در اجازات بله. مثلا یه حدیثی رو در کتاب صدوق بیده از نریومه عریونه صدر اما اجازه عام به کتاب نریومه عریونه داره هم طریق عام و بعد به این صدر می می‌چسونه اینجا اجازه رو به اسناد تخصیص یا اجازه رو به اسناد می‌چسونه یا اسناد رو به اجازه همسان شد؟ اینو استلاحت یک نوع تدریس یا یک باشی که شکاری نداره در جای اسنادی با اون اجازه یکی باشه اسناد عامش همیشه به همون شکل باشه خب اینجا از کتابش رو چون اون مثلا واسه اسناد میشه کتاب کاپیهشات کافی قبول ناداشه چرا از کتاب ناری عمره اومد از کتاب حلوی هست همون اسناد هست اما در کتاب فقیره در میاره به اسناد کلی میکنه این دلیل میگه ولو نفی ولو کلینی از رو کلی اعتماد چرا این یه کار است. این احتیاج یه شرکی داره جاش الان اونجا نیست و احتیاج به یک نیاز خب اگر این باشه این مشکل این روایتینه الان مشکل سرندش طوسی اما مشکل طریق نجاشی رو زختمون شده یه تنی قرار بده طریق طالقوم نکته میشه مشکل طریق نجاشی اینه ایشان از راه ابن عبده راخته از راه ابن فضل از راه اینکه این خطایث بی زهدی که فندری از علی بن اسکاتون که فقهی بود میگن باز برگشت از محمد بن حنبل تکرار می‌کنم همین حدیثی که الان ما داریم منتزع از دا جرایح تمامات همین حدیث این کلامی داریم توی نوادر علی بن که چاپ شده با اصول فقه اشعری دوباره رسیده تولد قط بکنه همین حدیث همین حدیث محمد بن حنبل توی نوادر علی بن اسکات اینجوریه میگه تاریخ این نسخه علی بن اسفاطی اینه هارونه بن موسی قلبه اوکراینی مرحوم از ابن اوقده زیدی از ابن فرزاد فتحی از علی بن اسفاطی اینه از عجایب کاردینه سندی که الان تو نواظر اس... علی بن اسفاطی به اینه با سند نجاشی است یکی اسنادی که اجازه است مسئله شبیه سوال ما متکشف توی نوادر علی بن همین سند عینه موجوده ابن اوغده ابن فضل ابن اسباد لکن در این نوادر اینطوره عن ابراهیم ابن محمد بن حمران ان تو نسخه خیلی حدیث ابراهیم مختصه البته یکی اجازه است من میفهمم یکی اسناد است تو که الان سنده ابراهیم هست بقیهن یکیه هیچ شرق ندارن با همون تمام سند قبلش و بعدش بعدشون مزدر فقط اونجا نجاشی از استاد خودش از ابن اوغده نمکرده اینجا از طلوفر از ابن اوغده شرق شر هم ندارن با قول خودشون شیخ حاله اقرب یکیه که ابن اوغده باشه و لذای این شبه پیش میاده که نکنه در قریب نگاشی هم سر خواقع ابراهیم وجود داشته خیلی